اما دوستان خانم ها آقایان دختر خانم ها آقای توی جمهوری اسلامی کلا مبارزه با فساد یعنی انگشت تو بگیری سمت جناح مقابل یا دولت قبلی یعنی اصلا بحث مبارزه با فساد فرع قضیه است و مقصود مبارزه با حریف و رقیبه الان وزیر کشور چند وقت پیش اشاره کرده بود به لزوم رادیابی و مبارزه با پولشویی و پولای کسیف و طبیعتا خب انگشت اتهام به سمت دلواپسان و منتقرین دولت بود این طرف هم در واکنش به این اقدام آقای الیاس نادران نماینده اصول و ارزشی رو فرستادن جلو که ایشون حمله دولت رو بیان و اینجوری خونسا کنند. عزیزی که امروز در دولت روحانی ادعای مبارزه با فساد دارد و دائما رقبای خودش رو محکوم میکنه نباید فراموش کند که برادر ایشان با حمایت آقای مشاعی و بقایی نزدیکترین افراد به رئیس جمهور سابق بیشترین امتیاز رو در تأسیس هلدینگ گردشگری در کشور گرفتند و بر مبنای آن بانک گردشکری رو درست کردن به عنوان منبع مالی پشتوانه کارهایی که بعد از اون کردن او, او, او یعنی قضیه رو خانوادگی کرده شد پای برادر رئیس جمهوره کشید وسط کلا این برادر آقای روحانی ب... ب... پاشنه آشیله شیخ حسن شده یعنی که میخواد شیخ حسن رو به چزونه به این بدبخ برادری یه گیری میده بالاخره می‌گم جوری رد میشه تو مسیر و اینا. خلاصه خلاص این بارم آقای الیاس نادران حمله وزیر کشور دولت شیخ حسن و اینجوری جواب دادن. اما از اونجا که شیخ حسن قبلا در مورد قاچاق هم یه تیکهایی به سپاه انداخته بود و ما هم تو همین برنامهم هم پخش کردیم صداشو، آقای نادران اومد توپو دوباره انداخت توی زمین شیخ حسن و غریزی زد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و اینجوری گفت. چرا بعد از دو سال دولت حتی نامه های اجرایی این قانون رو عملیاتی نمی‌کنه چون اگر این قانون عملیاتی شد اول باید برن سراغ بزرگ پاچاغچیانی که به ادعای خود دولت بیش از 20 میلیارد دلار قاچاق کالا وارد این کشور میکنند، و کمترین اثرش این است که جوانان تحصیل کرده ما هر روز بیکارتر میشن بله چیزی که عوض داره گله نداره کلا ایشون صفر تا قاچاق کالا و هر چیزی که شیخ حسن در لفافه به سپاه نسبت داده بود و حواله داد به خود دولت ولی یه چیزی جالبه ها دقت کردین الان سال هاست این همه اتهام قاچاق و رانت و پولشویی و فلان و این همه همه این حرفا متوجه سپا بوده همه از طرف مقامات رسمی و هم غیر رسمی ولی تا امروز حتی یه نفر از سپا هم حمله نشد حتی یه نفر یعنی هر دولتی میاد و میره یه دوجین آدم در سطح وزیر و معاون و مدیر کل و فلان و همه اینا به خاطر جرایم اقتصادی و مالی محاکمه میشن و میرن زندان بعد سپاه خیلی علنی و در سطح کلان خوب همیشه هم درگیر فعالیت اقتصادی بوده و این هم, هم پشت سرش حرف و حدیث هست انقدر حاشیه امنیت داره که تا امروز حتی یه نفر سپاهی هم مورد سوال قرار نگرفته اینجاست که معنا و مفهوم حرم امن ولایت مشخص میشه و معلوم میشه امام چرا فرموده بودن که ای کاش من هم یک پاسدار بودم؟